طیبین و طاهرین اللهم معصومین و معصود دایی و تعالی را از شد که به مناسبت غش و تدریس و به مناسبت این که غش و تدریس آیا موجب به خیار میشه یا موجب به خیار نمیشه یا فاسم میشه متعرضه به این مناسب روایاتی شدیم که در باب یکی از مسادیقی که معروف بوده در زمان جزوه تدليس دوباره شد البته در علمای اهل سنت اون روایت رو بیشتر زدن به مسئله عیب لیکن خب انصافش این است که نمیشه گفت اون رو باید جزو عیبه همین تدریس باشه که حالا بعد روشندتر میشه و از که اون مثل بارزش همون مثل روایت شاپ مسرات یا عبد مسرات اونه که در خستان قصه‌ی جیجن کرد تا نشون بدن که پرشی ما به این مناسبت روایات مصراخو خوندیم از مصادر عامه معلوم شد خیلی زیاد روایت دارند و به خصوص چارچن ابو هنیفه مخالف بوده یه مقدار بخاطر ایشون راجعه به ابو حنیفه و مخالفت و عدم مخالفتش که نظر از که ها و باز برای آشنایی با خود ایشون به خود کتب احناف مراجعه بشه دیگه حالا بعد اون بحث این که حالایشون دقیقا چی گفته و عباراتی یعنی هم که احناف دارن چی رویه اون دیگه از بحث ما خارج است و که خودش بحث اون اینجا رسید که با وجود این همه حدد در شات مسرات یا آیا ما در روایات اهل بیت از اهل بیت داریم یا نه؟ عرض کنم که در روایات اهل بیت این که ما الان داریم در میراث های شیعه چند جا آمدن اما در این میراز ها از خود اهل بیت علیهم السلام نیست. خاص کردن چیزی که از کتاب معانی معان اخبار شیعه صدور بود که ایشون از کردم مرموم صاحب وسائل اینجا سند رو آورده و مرموم جامعه حدیث سند رو نگرده نیسته به اصناد متقدم در بار و این سندیست که ایشان به کتاب ابو عبید دارن ابو عبید قاصران سلام هست کردن این ما دو نفرن یکی ابو عبیده ایشون اسمش محمد ابن مصنع محمد نیست زفرش محمد محمد ابن متنه ایشون ابو عبیده هست ایشون هم لحظیست و لغت شده اما ابو عبید فقیه هم هست و داره مذهب فقیه ایست و واقعا مرز ملایه این صاحب هم به نبیل هم به لحاظ به اصطلاح لغت و هم به لحاظ اطلاع بر احادیث و هم به لحاظ فقیه اصلا برای او یک مذهب خاصی رو معتقده. و این کتاب قریب الحدیثش انصافا کتاب نافعیه قلیقا بسیار کتاب نافعیه حال تهیه کنم خیلی کتاب از جز کتاب های است که در قریب الحدیث نوشته شده کتاب قریب الحدیثیشون و از خدم امروزه در دنیای علم این راهی می رو که ما رفتی نمی بسندن. مثلا اصلا ما از این کتاب قریب الحدیث فرسون از هزافت حدیث اگر نهم کرده دستش را داشته 15. اونم گناهیست که مرموم شیخ صدوب کتاب مانه اخبار رو گفت داری شیخ صدوب من نمیفهمی چه کارم کرده اینم ما ما این. چون این اگر مرد از مانه اخبار خب کل کتاب مانه اخبار رو در کتاب نبود اگر خیال کرده مثلا مانه اخبار یعنی از اعمالیه همون سلام موارد روزی در اخبار خب این که از اعمالیه همون قبوه ها به داره ممنون میکنه حدیث. این چرا میگره نداره و هرحال ما الان خود نها شیعه مثل جامال حدیث حالا یک فکر که باید بشی اینه که من های گاهنگاهی ازمی کنم که اگر بنابشه کتاب های که بینه روشتو بشه مثل وسائل مثل جامال حدیث اون نقاط مشکل کجاست؟ این نقاطی که تم اینا رو باید توضیح داریم یکی از نقاط مشکل اینه البته کتاب‌های دیگر هم هست که خاص به این نداره، خاص که مصنوعی. ازدواج هزار حدیث را ایستد کرده، مصنوعی. ازدواج هزار حدیث حدیث داره ده ده ده هزارت اما از این مقدار الان در کتب شیعه حتی در کافی و تحریز و استفساری نه چیزی حدود بیست و چهارمی بود آمده. حالا اگر شما یک جمع آوری جدیدی بکنیم از شیعه، خب به چه خب اون اولاس از کتاب ابو عبید ما حدیث رو برام اون به این سواد زید ان ابیه سجاد این ابیه روسین این ابیه امیر مومن رسول الله یا خود امیر مومنی رسول الله توش نداریم ما غلطیم که یک مقدار کتاب داریم این کارای ما الان علمی نیست مثلا از کتاب ابو عبید برای از این در 15 حدیث روان که صلوبه عبید ازش نمی کردیم سند هم نوشته بحث سندی هم این حدیث ضعیفه این بحثش رو خود اجازه شیخ صدوق هست به کتاب غریب الحدیث سر و نیست دستور اجازه هست و کتاب هم موجوده و این کلمات ایشون هم کلمات چیز نیست یعنی به اصطلاح حدیث نیست کلام خودشه خودش صحبت کرده مطلبی که خودش گفته یا حاله ایشون نوشته در حسانی در متصله علم نبی حالا من عبارت خود قریب الحدیثشون میخونم این و به حسانی فکر میکنم اگر کتاب چاپ مروم های ربانی باشه چون من الان چاپ این کتاب جمعه حدیث رو اونم. در چاپ های ربانی شه به اسناد متصله اینجای شه به اسانی. نه حسانی نداره اگر درست همونه به اسناد. من نشد به خود ما آن الاخبار مراجعه بله. لا تصور تسر رو لعبه از کردم گفته شده این ماده دو جو آمده یکی باب مزاعف آمده به فتح تا بخونی لا تصور رو الابه. یکی هم به باب ناقص یا ای سرا سریه سرا یعنی به حصه جمع کرد حفظ کرد اینجوری هم آمده ولذا اگر بخواهی که از مزاعف بخونی لا تصور رو الابه. اگر از باب سرا باشه با یا ساد و یا، وقت باب تفعیل میشه سر را لات و سر رو به زمه اول خونده میشه ولغنم منشترا شاعت مسراتن فاور به آخر نظرین اینجا نسخ خود اهل سنر تو این حدیث مختلفه اشاره به آخر نظرین هست اگر این باشه ما تقریبا آخر نظره رو به فارسی تسریم کنیم تسریم نهایی آخر نظره تسریم نهایی به احد نظره هم هست اهد نظره اینو کلمه آخر احد هم آمده. و ما ترجمه کنیم به یک تسریمی که میگیره به یک تسریمه به خیر نظره هم هست خود اهل ندارم دارم بیایم کار به کتاب ما آن اخبار نداریم خود اهل سنت هم به معنای به بعضیشون خیرنظرین هم هست اگر اون باشه به بهترین تصمیم خیرنظرین بهدن شاید علیه الله اشاره باشه به همون نقطهی که هیروزا من اعز کردن نقطهی لکیفیه اعز چون ما تو بحثه که دیگه لغت و موقعت ارف و هرم هم باید قرباتی بکنیم و خلوط میکنیم و خوصوی نیست از کردیم مرگومه شیخ در مکاسب در برس خیارات و آقایش که قبل از ایشان بعد از ایشان آمدن وقتی آن تفسیر خیار رو کنم از خیار سلطنت و فصل عق یا ملک و فصل عق خیار روی از که انسان بزونه رو فصل کنه از ما اگر باشیم شاید کلمه خیار فقط سلطنت نباشه توش کلمه خیار خیریت هم مطرحه خوب در قصد آیا خیار مجرد قدرت من بر فسق عقده یا خیار اضافه بر فسق عقد گذینش اختیار بهترینه ممکنه اینی که فقها اختلاف کردن در حقیقت منشأش همین حدیث باشه اگر فوق با آخر نظرین باشه یا به احد نظرین باشه این مناسبت است با ملک و فسقل عقد میگه تصمی بگی با یک تصمی شما با بگی نمیدید کدوم بهتر دارم شما یه تصمیم بگید یعنی چه یه تصمیم یعنی یا قبول بکن یا رد بکن یه تصمیم بگید این میشه عهد نظره. آخر تصمیم نهایی که آخر نظرین اما فهو به خیرن نظرین با تصمیم بهتر با بهترین تصمیم این بیشتر با لغز خیار مناسبه تردی منو که بلا یک تردی شکتنید هره بیرود آنها تو زمین نیست که تو حدیث باشه تو این حدیث الان سه تا مرس رو من دیدم شاید مرسی دیگه هم باشه الان من من همه استقصانه نکردم تا حالا سه مرسی در این حدیث دیده شده رو کلمه به آخر به خیر، به اهد نظره این رده ها و رد معها ها من منتن بعد نهشه المسراد یعنی امناقه اول بقره، او شاد این زیبایی عبارت ابی عبید رو گفتم ابی عبید وقتی حدیث رو نرم می میکنه میگه لا تسورن ابل برهنه شطور و گوسه وقتی میخواد معنا بکنه گام رو هم اضافه میکنه این خیلی ظرافته چون خود خودش به بحث ایمنیز از دید اهل سنت گفتم که این تسریه تفیه شیر حیوان در شوزه ندوشه تا بزرگ ده میشه که این حیوان حیوان پوشیده این اصلا تحسیلیه بشه. وقت بعضی اونا نمیگن که تحسیل توی گاو هم میاد. حتی بعضی اونا میگن تحسیل تو کنیز میاد. ممکنه کنیز رو شامز نگه میده ولی وقتی که میگی مثلا کنیز پوشیده ولی که بعد خود مثلا شیر بده حالا یه حالت اما اونی که بحث معروفه به گناهی هست توی چیه وایاتشون تو بعضی اشاته تنهاست. تو بعضی‌هاش ابن رشد و شاطرها هم مثل اینجا اما ستایی ندارن تا اونجایی که من دیدم ها علم خدا رو تا تا اونجایی که در متون مختلف اهل سنت دیدن دیروز یادم متونشون خیلی زیاد درآمد مثلا خیلی چیز عجیبیه قول ابن حزم اینا که در طبقه بعد از فقه هاشون مرزماله لا یحسیح الا الله یعنی خدا مینه که چرا این حدیث در عمل کرده این این زیاد نرم شده پس بنابراین این, این که ابو عبید یا یعنی این استظهار فقیه خودشه این زرافت کار اب... ابو عبید قدسونو یا لبنو فی زرعه ها یعنی هب و ولن یوحلب ایامن چند روز اینو ندویشیدم الا انقال یا فی حدیث آخر من محفله از کلم حفلم در لغت عرب معنی جمعه این که محفل هم که میگم این محفل نمه ها از ازیل شد مجموعی مردم جمع میشن اونجا فرده ها فلیرد سا و این نماسون میاد محفله لان اللبن هفل فی زرعا جمع شده و سمعه و کل شیع هفلته کسرته فقط هفلته محفل و حفل به زیادی این است که حدیث انس کردم در مسادر ما آمده ما از اهل بیت نیست این از کتاب قریب الحدیث ابو که الان گفتید انس در چهار جلد چاک شده در این اشتباه مورده جلد دو نمیده جلد سه بود این اشتباه مورده باشن چه بد تردیه هستنم که حدیث تصریه رو من چون بعضی نقطه به الله بحث ما دیگه رازی که کتاب ابو عبید اینجا رو خون میشه لیکن چونه بود اعز کردم که و خود این کتاب ابو عبید یکی از مسادر نهایی نسیر که ما چیز شده یعنی جمع کرد بیش از ابو عبید مثال خود ابو عبید با این که شاید که مثلا اسم زمخ شاید رو مثلا تو نحو اینها بیشتر شده باشین تفسیر هم که در کشرا در نحو امام فرن نحو اینها زمخ اما ایشون یه غریب قریب حدیث داره الفائه شاید هم شارجه و انصافا کتاب برقابید از اون بهتره انصافا بینی و بین الله هر داده در من اما انصافا ایشون در این جلدی که من دارم این چاپی که من دارم ظاهرم یه چاپ باشه نشنم چاپ دوم نشنم ماله به نظر ماله هنده کجاست در دکن هیدرواز دکن هند بعد اخصد کرده و قال ابو عبیفی حدیث نبی صلی الله علیه و سلم لا تصبر الابر ول غنم هست کردم مرگون صاحب وسائل ول بقره ول غنم داره ستفر رو بوده. در کتاب وسائل تو همون باب قیاد با که اشتباهه اینجا فقط ابل و غننه تو نسخ بدلاش هم بغر نیست تو روازش هم نیست فمن اشترا مسراتم فهوه به عهد نظره بعضیام هم آخر نظره در اینجا در این کتاب بعضی اهد و این خیر نظره این رو من از کتب حدیث سنت نکندم نه از این کتاب انشاعرده ها برد مه ها ساهن من تر. من چرا این رو خوندم؟ چون الان عبارت صدو برای که که صحابه سال رو نارد کردن صدو رو نشته ابو عوید انه ابی عوید به اسانی متصله هم رسول الله. شون رو گا که اینجا سند نداره الان آل ابو عوید یه حدیث ندید این سند نداره سن چطور صدو ممنون صدو در معامل اخبار هم مدرد به اسانی به متصله الان این نایی که ابن بازو نارد کردم کلن سند نداره این چرا حالا اینجور شده چرا مرموم شیخ صدو و چرا شیخ صدو هم سند ظاهرن ولی علم و اندالله نسخ این کتاب مثل بقیه کتاب ها مختلف بوده ظاهرن در این کتابی چاپی که من دارم در هاشیه از دو نسخه نسخه پلانه کنند و خود به کتاب برگردیم ایشون داره زاده کذا و کذا در دو نسخه در دو نسخه دیگه دو صفحه‌ای افتاده اینی که منو خوندم این نسخه مشروطه اسمیشون چاپ کرده در حال که در دو نسخه اینجو آمده حد ثنا یعنی بعد از اینکه حدیث آورد این حالا من متخاسن میگم فکر میگم غالبا ابو ابید اینجوریه اول متن حدیث رو میاره بعد سند رو میاره بعد از اینکه حدیث رو آورد در دو نسخه هست قال حداسنوا حسین سر من معتبره قال اخبرنا مغیره عن ان ابراهیم انا ابي غريره عن النبي الله عليه وسلم این همون خان متن حدیث ابو هرث گفتم مشروط این متن این حدیث هم مال ابو هرث است درست یعنی پس معلوم شد این متن اینقدر که من مشور زعمت بدی اگر شما عبارت صدوق رو نگاه بکنید و عبارت ابو عبید صدوق اشتباه کرده تو گفته به اسناد متصل الان که در کتاب اسناد نداره از فایده نقل صدوق برای ما اقلی این شد معلوم شد که پیش صدوق اون نسخه ابو عبید بوده در دو نسخه ابو عبید سنت ذکر شده در این نسخه که الان کاب کردن سنت ذکر نشده در حاشیشونش خیلی زرافتی ها خیلی لطافت کاره با اون سندی رو که ما الان من به شما همینیم دقت بکنید در ها این همه زحمت میگشیم در این جرح معلوم میشه که چقدر مرموم صدو اون به اسناد متصد درست بوده اینطور نرده که اینچون خدایی نکده حواسش پرس باشه بفتاره که ابو عباد باطر افی حدیث نبی و قال ابو عباد افی حدیث نبی این که صدو اونگه به ا اینا شخصا واقعا بوده اما در دو نسخه اسناد بوده در بقیه نسخه نبوده. اون که الان چاپ کرده بقیه در این که نداره. پس این فائده‌ی تریف ذکر تریف باشد شد که میگه از اول کار که چرا عبارتو خوندم برای همین جه. پس صدوق وقتی که عبارتی میاره این اشاره است که این نسخه کتاب ابو عبید من بوده اون مزخهی که توش تند کامل آمده اون وقت قول رو مسرات یعنی انناده اول بقره اول شاد این اول بقره رو ابو اضافه کرده تو حدیث نیست صدوق هم نقل کرده بود درسته این نقل صدوق درسته علب یه قدس سرا ایشون سرا چاپ کرده و فیزر آقا سراه هم کنده میشه سره هم کنده میشه باب تفیل یعنی حق نفی و جمنه ایامن فلم تخلق ایامن تا اینجا صدو مر کرد برگوه الان قال بقیهش تلو هست کرد بقیهش اینه و اصل و تسریه و جمع یوغال من مین سرهی تول ما من که سره تو احتیال به چیز نداری مفیولا نداری و سرهی تو قال الاغلب رعد غلاما قد سرا فی ما و شباب ما از شباب باید باشه داره هنفوان شرعته. و شبابه و حالا ما اون سرا به کم استعمال باشه مقصور آل اوبید آل اوبید یا رب همان سرآور تو سبیل و خیر و جبی جدیرو و یغال منها یغال من از این یغال اصطلاحا همین است که ما ازش اشتقاط میگیریم ازش مثلا میگیم از ماده ذره با به افتعال برد یه اثر مثلا این یغال من اوائل نحو و صرف بوده چون ابواب 222 21 22 23 رهات شده زمان امام جواد سلام الله خیلی قدیمی ها بوده لا يغال منه بل سُميت المصراخ كأنها ميامون شمت باز خود کرده من المصراخ أنه من سرار الeben سرار بله به بل. اصطلاح بل. بل. سرار مثل سرر سرر رونای کیسه یه چیزی که آدم جمع میکنه توی سرر نقه بوده که دور پای شطور دور دست پایش شطور میرسن که تکان نقه بوده جمع بشه یعنی راه نیفته و یقعی که این مسررات از سرار عبده ایشون ایشون ولی ایسه حاضر منداله که پیشه ایشون میگه نه این است که این اشقاب درست نیست چون در روایت به شاط آمده اون مال خصوصی شطور شات چه سرام ندار. منداله که سراب نده لوکان منزالکه منزاله که منزاک لقال مشرووره و ما جازه بعد هم این نحوه استدلال لغویون و صرفیون در اون قرن سومه اون زمان که اینطور صحبت و ما جازه ان یقال ذالک فی البقره والفر در, در بدر گفته شده در فتوا آمده اما در روایت در خانه اومده لأن نسرام لا یکونو الا لعوه به رضایش یه بگه این است که از این معنا نیست و از یه حدیث این آخر این هم ببینید دقت بکنید در اینجا صدوق نداره خیلی عجیبه نداره که این صدوق نیارده نها به المحفله نه این نکته قاله اینها خلابه خلابه این خوده این مطلب رو به معنای خوده گرفته هر محصله مسررات به اینا البته این مطلب که محصله یا مصرات خود هستند این خیلی تاثیر داره بعد ان شاء الله توضیحش ارزمیکنم چون ارزم کردین دو تفکر در فقه اسلامی بوده یکی این که مصرات یکی این که مصرات نیست خود است تدلیس قش هست در پیگوزها هست کردم یه بحثیت که خیال نکنیم ما تو حوزه ما اینجا نسیستیم یه اصلا در سطح جهانی در قوانون بشری اصلا به طور کلی یعنی به عبارت مخرا اگر ما قبولی کنیم از کنیم بعضی از فوق های اسلامی قبول ندارن که در خیال سلاسیه خیال به طور طبیعی سناییه یا انسان قبول میکنه یا رب میکنه اینه خیال اینه, طبیعت خیال اینه. اما اینکه که تفاوت بده این فقط پیش ما شیعه و پیش مشکول و مسلمان ها توی خیار ای هست فقط خیار ای اون وقت اگر گفتیم مثلا گوسندی که یا گاوی یا چطور کشیر جمع شده به مخیر بین سه چیزه نگه بذاره رد کنه عرش اگر گفتیم خودعه و تدریز و قش دو چیزه خیار خودعه دو چیزه خیار تدریز دو دازه یا رد بکنی یا قبول بکنی و این روایت پیغمبر هم معیده همین نکتی و است. ما هر کمون اینه اینشانا این رو تا آخر اثبات می‌کنیم. نکتی و هم همینه مثلا نکتی و اغلالی کار به تعبد هم ندنیم مسررات عیب نیست تدلیس رو عیب خروج از اصلی است. مثلا یک حیوان بخره پا شکسته باشه این عیبه چشمش کور باشه این عیبه اما اگر هست شیر رو جمع کرد این عیب نیست خب می روش شیر تمام میشه برمی باعث این عیب نیست این خیال کرده پرشیره برمی روش شیرش کنی هیچی از اعضای بدنش عیبی نداره همچنان که در باب روزه هم اعز کردون ما که صافت به نظر ما این تفسیر شدیه تفسیر خوبیه برای آیاتون که. خداوند متعال شخص روزگیر رو به سر رسم می‌کنه یا انسان صیح و سالمی که مسافر نیز در شهر خودش این وظیفه شقا روزه رو گرفته چیز دیگه نمی‌چنجه یا انسان مریض این وظیفه ش فقط کار دیگه نمی‌چنجه یا انسانی که موطیعه این وظیفه ش فقط است حالا کار به فرضانه که در حامل میگن که سبیه و قضا هم خود ما لولا حکم مخالفه مجلسون در حامل هست فقط سریه باشه، غذا نباشه. از قدماي اصحابم نادرو در قالبين، قلبي الا که مشكور اينطوري که هر روز. حالا به هر حال، ببینید، صحيح اون است که در بدنش هیچ نوع اختلالي نیست. یک و تحمل این مقدار گرسنگی رو داره. مثلا اگر در روز که هست 12 ساعته، این تا 20 ساعت میتونه گرسنگی 25 ساعت، 30 ساعت گرسنگی تحمل کنه. اینو میگن صحيح که تحمل کرده. مریض است که در بدن او خلل پیدا شده اختلالی پیدا شده از مجرای طبیعی خارج شده طبیعتا انسان مریض بر این که به حد اعتدال برگرده هم به دارو نیاز داره هم به غذای بیشتر این دوتا با انسان که روح زرس نمیسازه با غذا نخورده و با گرسنگی نمیسازه پس مریض است که یک نوع خلل در جسمش پیدا شده اصل اون کپ کرده سرما خورده مریض قند داره که باد مثلا دووا بخوره مریض خاصی داره که باد قرص ها رو بخوره فشار دارهما قررسه ا آخر اعوارد مرضهایی که متالب وجود بود. اما متیر اینطور نیست در بدن متیر خل نیست بدنش سالمه که بر اساس اون وضعیت خودش تحمل گرسگی نداره. مثل فییرما سال ۸ سال ساله سال پنج ساله بر کسی پس نه این اصلا طبیعت پیر برکنید یا زنی که مثلا حامله است بچهش مثلا قضا میخواد این مریض نیست هم برای زن مرز نیست این ففت زده طبیعت زنه، خروج از مجرای طبیعی نیست لکن زنی که بچه داره چون قضای بچه از بچه از مادر میکشه طبیعتا مادر قضای بیشتر میخواد پس ما بیاین بگیم صحیح داریم مریض داریم مطیق داریم دقت مکنیم مریض غیر از مطیقه مطیق رو هم دردین یوتیبونه هم فیلیتون تا آمونسکی یا مساکی از اختلاف زبط قراره پس تناول این بیم در ما نحنفی هم بگیم ما عیب داریم و تدریز عیب داریم و مثل مثلا بیروز خوندیم هم عبارت نحر هم از ابو هنیفه. او مصرات رو تر میدونه ابن حضم هم عیب میدونه تصریه رو جمع کردن شیر رو در پستان گاوی و بوسن این رو عیب میدونه یه بگیم نه این عیب میدونه چه عیبیه شما شیر جمع کرده پستانه که هم بزرگ دیده میشه این چه عیبیه عیب نهایت شما شید این پرشیره برموشون کم شیره این عیبیه سبیادش هم میدونه دقیق کرد این به اینه که پا شکسته باشه این عیبه این خیلی بحث قانونی لطیفیه پس ما بیاییم باب تسریه رو به باب تدریس بزنیم و در وقت نفیجش چی میشه اگر عیب گرفتیم خیارش سلاسی میشه یعنی میگیم من این شطور نگه میدارم فرق ما بین این شطوری که شیر با پرشیر به من بده این اگر عیب باشه اگر عیب نباشته بگه دیگه آخشانیم که نگه بذاریم یا با همین قیمت قبول کنیم یا رو فرص کن نمیتونی بگی من شطور نگه میدارم تفاوت به من بده. اگر عیب بود بیرون تفاوت اگر تدریس بود دیگه تفاوت مطرحیم میگن یا قبول بکن یا رد بکن دیگه تلوه فر... نه دیگه شما مغالب بحث شدیم مجبوری میادونم از کلمات علماء خودمون بخونیم مثلا در کتاب شرایط بحث تسریع رو دارن، اما از کنید توی بازی ما تسریع نیمده اما در تقیقه ما آمده مثلا شرایط عنوانش اینه از تسریع تو تدریه ایستو اونو فضل می کنم چی محاید دیگه شرایط شرایط محاید دیگه که تسریع ایونی نیست واسه این مطلب، ببینید دقیقه اینی که ما حسره قاعده بفتیم و فوقه ما گفتن و چون روازه نگه این مثل رو اهل سنت هم از رسول الله نورتنه فعنشاه رد ها و عنشاه همسطه ها یعنی خیار سناییه اگر عیب باشه خیار سلاسیه البته نهز در خیار عیب هم خیار سلاسی سنایی میدونه و که خب از دیدگاه ما, ما روایات داریم عرضم کردیم خوب قواعد قسمتون تو مکاسب خیلی قواعد مهمه در کل دنیا این تاثیر گذاره، خیار طبیعتاً سنائیه مثلا خیار هر عقدی که شما میگن خیار داریم، هر عقدی میخواد باشه طبیعتش اینه که سنائی باشه این اصل خیار یعنی میگن یا حالا فلسطه مثلا خونه رو اجاره کرد سالان پنج اتاق دادید نیست میگن یا اجاره رو ابطال بکن یا اجاره را قبول بکن میگن نه یا ما به تفاوت امام بدهیم میگن نه ن عرض دیگه. شما لزوم عرب داریم میگه عرب لازم نیست عرب لازم نباشه میشه انجام بگیم که نادیم اما اینکه بیا شما تفاوت رو بگیریم من از شما دو کیلو شیر خریدم بعد توش آب داره میگه آقا ما به تفاوت بین شیر و با آب و شیر خالص میگه نمیشه یا همینجور با این قیمت قبول کن یا برگردون خیار طبیعت شنااییه بلسا اگر ما باشیم مصداق قاعده و همینطوره هم است الان فتواای فقهای ما این بحث قانونی مثلا هم دنیا همسایه استفاده نمند. ان شاء الله سوال دیگه بحثشید در قانون قری هم بخونم در رابطه با همین خيار تدلیس اینا ان شاء الله تعالی ببینید طبیعت خيار در باب معاملات در باب عهود عقد نکاح البته اینم با یک نکته فنی خیلی لطیف ایشون جزو رموز این فنه خيار هم در عقودی میاد که فسخش در اختیار ما باشه این یک نکته بسیار لطیفیه که حتی بر بزرگان فقه نظر شده اما عقودی که در اختیار ما نیست، اختیار بر اونها نمیاد یعنی نکته فنی وریکیه قابل نفی لطیفه هر عقدی که متعاقدین بتوانند اون رو فسخ بکنن این اختیار در میاد اما اگر عقدی بود که متعاقدین نتوانن فسخ بکنن طبیعتا میگه خیر واردنده این بحث قانونی بسیار لطیف این خیلی فوايد داره خیلی نکنه خیلی مطلب وسیعیه یعنی ادیت بزرگارت مثلا حتی اون مصادره و اینجا درد ایشو دیگه معنای داره یا من قانون واردون بحثش هم اشاره کردم مثلا این با مثال میخوام بگم ببینید شما راستین برده ای رو خریدین حالا میگیم مثلا من یا مثلا برده رو رفت شما شد بگید نه من نمیخوام به من باشه این نمیخوام رفت به من باشه این کافی نیست باید آزادش بکنی نمیخوام نمیشه شما این ازدواج کردیم با خانمی عبد ازدواج و به اصطلاح سله سله خلقه زوجیه رفتین بعد از عبد ازدواج هم شما هم خانوم بسید نمیخوام نمیشه میشه نه نمیشه یعنی طرفین این حد پسخ ندارن در باب نکاح به دست طرفه نیست خوب دقت کنید در باب نکاح دست طرفه نیست که فرست بکنه حتی اگر راضی فرست بکنن در باب نکاح رایش اینه باید طلاق بده شوهر طلاق بده شوهر بازن بگن آما فرست کردیم آم بگه ما فرست کردیم نمیشه احضر نمی کنه این خیلی زرافت داره این نکته قانونی هم میگن اگر قانون آمد برای یه زبال یک خودش راه معیم قرار داد خوب دقت کنیم این معنی اینه که زبال اون عقد دست طرفه نیست اگر دست طرفه نشود نشد دیگه خیار بر نمیداره اون عقدی خیار بر می داره که زبالش دست طرفه باشه چون معنی خیار زوال و عبقه عقده بر این طوره شما سای تو روخیم باید میوان برگردیم که کلی شما تفاق مال. میشه چون زوال دست طرف اینه لذا شیار توی به داره اما اگر در عقدی آمد زوال دست طرف این من بود اصلا شیار معناه داره روایت آمده باشی و لذا قاعده, قاعده توی نکاح نمیاد ازا فندم میاد در دیگر از بزرگان فندم میاد صحیحش همین است عیدی از بزرگان فندم علیه خود همینه همین است که المؤمنون اندیشید که اینکه از بحث خارج نشه نشه بحث قواعد نیست که اینو در کل معاملات مفیده پس این نکات فنی رو که بعضیش قواعد کلی است همیشه حفظ بکنید که در کل ابواب معاملات تأثیر داره پس خيار کلا سنایی یا اضاله یا یعنی ابتال عقده یا ادامه عقده الا خیار ای بسولاسیس تصریح هم محل کلامه اگر این روایت رو ما داشتیم انا چون ما نداریم متاسفانه ما شیعه ها نداریم و فی حدیث آخر انهو نها ان بی المحفل این خیلی دیگه این حدیث و قاله انها ها خلابتون خلابه برنای تدلیست یعنی خودعه فری وقال این ها خدا. اگر این باشه معلوم میشه تطریه همینطور که مرمومش محقق فرموده تدلیستون ولی سعیدن فالمحفظه هی المسرراتو به اینها و وحن ابن مسعود این اشاره است به اینکه این حدیثی از رسول الله نیز از ابن مسعوده البته در بعضی از نسخ سند داره بعضی از نسخ نداره قال منشترا محفلتم فرده ها فلیرده معها ها و قال ابو عبید این مقدار صدوق آورده صدوق منشتر همه عبارته ابو عبید رو نیورده و این مماسوم میاد محفله لعناللبه قد هفله فی ذرعه ها و شمعه وکل شیئن کسر تطوف قد احتفلته و من هو غیر قد احتفل القوم الان ما آراوه جشنواره احتفال میان احتفال فلان ایران میان جشنواره فستیوال به قول انگلیسی و قد احتفل القوم الاشتموا و کثروا و لهذا سمي محفل القوم لهذا سمي محفل القوم مفعول جمع شد و لهذا سمي محفل القوم و جمع المحفل محافل و او خلابه یعنی یغا و من خللب تو او اخل خلابتر من حالا به هم به اینجا اعضا باشه یا ای باشه یقال من چون اعضا آورده اینطور می این, این در کو عرب هست مثلا یغا و من خلاب تو او اخلوب خلابتر اینو مثلا شاپله خلطه و اشتباه چاپ کردین تو. آیا خلف تحو بخونیم یا خلف ثبو بخونیم؟ میگن هر که اگر ایضا باشه خلف تحو بخونیم و اینجا ایضا آورده بخو به قرینه اخلو بوو واس خلف باشه. و اگر ای باشه خلف تحو بخونیم. به بین خلف تحو و به حساب نسبت به متکلم یا نسبت به مخاطب. پس خلابه هم به معنای خدا. بعد مرحوم صدوق بقیه کلام ابو عبید رو نقل نکرده از کلم عبید غیر از اینکه لغوی غیر از اینکه محدث بزرگوار یا از بین احدث خیلی واقعا دات و معارف بزرگیست بعد اینشون خلاوه رو مطرح میکنه که خلاوه ای خودعه و خریب و منوها حدیث و نبیین و خوندین ما این حدیث خیلی معروف و بین احدث و و آثار فراوان داره که اینشادا تو ب این رجل اسمش حبان بن هی یا منقذ نه هیام من یراسه است کان یخ در قلب این گویه سم یه آجور شیده به گی خورد شده بود خیلی کمی حواسش فصد بود کان یخ در قلب فقال رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم اذا باعت لا خلابه اگر این چیزی خیدی بگه خرید توش نباشه چون من حواسم پرته بعد مراجعه بکنن از ازنا نگاه بکنن، غوذا داخل و خونه نگاه کنن که درست بود، امضا بکن، و الا بکن. این یکی از ریشه های بحث خیاره، از این داخل که پیغمبر اکرمی که از شنن مهمی پیغمبر در بابه به اینس خیار همین روایته، اکثر ایشا رو در محل خودش به اذن الله تواب بعد خوب دقت کنید جناب آقای ابو عبی فکر خودش هم میاره و حدیث و المصرات و المحصله اصلون اگر یادتون باشه دیروز خوندیم که ابو حنیفه قبوذی میگن حدیث این خلاف و اصوله ایشون و ابن حزم این خودش اصلون اینجا میگه اصلون اصلون من لكل من باع سلعه یک کالایی رو بفروشه و قد زینها بالباطل دقیقه ها انصافت زیانه ها یعنی مرادش اینه که عیب نیز خداه تدلیس غشب زیانه ها به طاقت کار رو کل من با سلعتم و قد زیانه ها بلباطل انالبیه مردود این کلمه مردود رو نفر بدنی چیه ظاهرش مردود نگفت باطل مرده باطل میگه برو رو باطل مردودو ظاهرا مرادش اینه که حق خیار داره میتونه رد بکنه رد بکنه نه اینکه باطل بشه الا عنه المشتری لعنهه غش و خدا اگر واقعا مرادش از مردود خیار باشه خیلی عبارت زیبا و کشنگ و درستiram آورده حقیقتا یوا خیلی برداشت و خوبی کرده اون برداشته معروف اهل سنت مهی بون, ای بون. حق بایشونه با که اینه ایب نیست تدهیر و خدا و قوله و یرا دو معاها ساعن این ارز کردن دیگوزم خوندیم از نقاط اختلافیست بین اهل سنت یک ساسه من یک من شی یک بر خورما باش برگردی یا یک من گندم داره یا یک من تامامم داره دیگه از متون متعدد خوندیم این میخواد تکرار بشه و یرد و معاها ساعن از کردیم ادهیش که مثل ابو یوسف میگفتن این یرد و ساعن مراد قیمت و مداش که دوشیده و مصرف کرده لذات گاهی اوقات قیمتش از ساع بیشتره گاهی لازم نیست سا. اما از ابنه هز اصرار اخباری ابنه هز که ابنه هز اخباریه مثل اخباری یک من ابنه یک من حتماً هر چی شد هر نمیدار دوشیده دو چیده یک منطقه نکم نزیاد و یرد و معه ها قال و تعبیر ایشان قاله و قوله و یرد و این ها سا ان که انما انما جعله قیمتا خیلی لطیفه ایشون میاد تصرف نطوره باید نیست این حضمیست لما نال المشتری من لبن و کان ابو یوسف این انما عليه القیمه صلى الله عليه الله <تصفيق>